رویای بابل اثر ریچارد براتیگان. ترجمه پیام یاسمنجو با صدای آرمان سلطان ساده یکننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوارمه با همکاری نشر چشمه خبر خوب خبر بد دوم جنویه 1942 خبرهای خوب و بدی داشت اول خبر خوب فهمیدم مرا برای خدمت در نظام وظیفه نامناسب تشخیص داده اند. و به عنوان بچه سرباز به جپه جنگ جهانی دوم اعزام نمی شوم. مسئله اصلا بی علاقی به وطن نبود چون من جنگ جهانی دومم را پنج سال پیش در اسپانیا جنگیده بودم و یک جفت سوراخ گلوله هم در ماتهتم داشتم که این را اثبات می کرد اصلا سردر نمی آورم چرا تیر به ماتهتم خورد در هر حال یک داستان جنگی مزخرف بود به مردم که می گویی ماتهت تیر خورده دیگر تو را به چشم قهرمان نمی بینند جدیت نمی گیرند. اما این دیگر اصلا مسئله من نبود جنگی که برای باقی شروع می برای شروع من تمام شده بود حالا خبر بد هفتیرم یک تیر هم نداشت سفارشی گرفته بودم و اسلحه لازم داشتم اما موجودی تیرهام تازه ته کشیده بود مشتری که میخواستم آن روز برای اولین بار ملاقاتش کنم از من خواسته بود با اسلحه سرق قرار بیایم و میدانستم که هفتیر خالی آن چیزی نیست که مشتری ها میخواهند چیکار باید میکردم؟ یک سنت هم نداشتم و کل اعتبار مالیم در سان فرانسیسکو دو پاپاسی هم نمیارزید سپتامبر مجبور شدم دفترم را تخلیه کنم. هرچند ماهی فقط هشت چوب برام آب میخورد و حالا هم داشتم از قبل تلفن سکه یه سالن ورودی اموراتم را میگذراندم سالن ورودی مجتمع مسکونی محقری در نابهیل که محل اقامتم بود و دو ماه هم اجارهش عقب افتاده بود ماهی سی چوب هم گیرم نمیآمد برای من زن صاحبخانه از ها هم تهدید بزرگتری بود. همه منتظر بودند این ها سرکلهشان در سانفرانسیسکو پیدا شود و توی اتوبوس ها بپرند و بالا و پایین خیابان ها را گشت کنند. اما من که خداییش طرف ها را میگیرم تا بیایند و مرا از شر این زن خلاص کنند. از آپارتمانش از بالای ها سرم داد میزد که پس این اجاره من کدوم گوریه تن لش؟ همیشه روبدوشام رگل و گشادی تنش بود. آن هم تنی که در مسابقه ملکه زیبایی بلوک های سیمانی جایزه اول را می برد. مملکت گرفتار جنگه و تو حتی اجاره کوفتی تم نمی دی. صدایی داشت که پرل هاربور در مقابلش لالایی بود. به دروغ می گفتم، فردا، نعره میزد فردا تو مشکت. شهست سال داشت و پنج بار استواش کرده و پنج بار هم بیوه شده بود. هرامزاده های خوششانس، اینطوری بود که صاحب خانه شده بود یکی از شوهرهاش براش گذاشته بود خدا لطف بزرگی به شوهر کرده و یک شب بارانی ماشینش را درست آن سمت مرسد روی ریل راه آهن اسکارانداخته انداخته بود فروشنده یه سیار بود برس می فروخت قطار به ماشین کوبید و بعدش دیگر بین فروشنده و برس ها نمی شدد گذاشت. حتما توی تابوتش چندتا تو برس هم مانده چون فکر کردند آنها هم جزی از او بودند. در آن ایام اهدهتیقی که اجارم را می زن صاحبخانه رفتار خیلی دوستانهی با من داشت و همیشه برای صرف قهوه و دونات به آپارتمانش دعوتم میکرد. می کرد درباره شوهرهای مردش بود، مخصوصاً آن یکی که لوله کش بوده حال می تعریف کند طرف چه مهارتی در سرویس کردن آبگرم کند داشته از او که حرف می زد، آن چهارتای دیگر را کلن بیخیال می شد انگاری که این ازدواجهاش را تو اکواریوم های تیره و تاریک برگزار و سپس سفری کرده بود. حتی آن شوهری که با قطار تصادف کرده هم خیلی نظر لطفش را جلب نمی کرد و در عوض از هر درباره آن یارو که سرویزکار آبگرم کن بوده خسته نمی شد. حتما به راستوریز کردن آبگرم کن این خانم هم خیلی وارد بوده. قهوه که می آورد همیشه رقیق رقیق بود و دونات ها هم دونا از آن نانشیرینی های مندهی که از نانوایی چند بلوک آن طرفتر در خیابان کالیفرنیا می خرید. من بعضی وقت به او قهوه میخوردم. چون به هر حال کار آنچنانی هم نداشتم بکنم. اوضع به بیحالی حال حاصر بود. البته سوای سفارشی که تازه گرفته بودم. با این حال از پولی که بابت تصادف و مساله بدون مراجعه به دادگاه گیرم آمد. پسندازکی کرده بودم. و برای همین هنوز می توانستم خانم را بپردازم. گویی که دفترم را چند ماه قبل تر پس داده بودم. آوریل 1941 مجبور شدم منشیم را هم مرخص کنم. از این بابت اصلا دل خوشی نداشتم. پنج مایی را که برام کار می کرد رفتارش دوستانه بود. اما اصلا نتوانستم از این برخوردها مقدمه مناسبی برای اقدامات بعدی بسازم. بعد که اجبارم مرخصش کردم دیگر اصلا تحویلم نگرفت. یک شب زنگی بهش زدم، پشت تلفن نیش آخرش رو هم زد که تو یه کارگای در پیتی هستی، باید بری دنبال یک کار دیگه، پادوی خوراکته تره خب دیگر، هرچه بود حسابی تنبل بود، فقط به این دلیل استخدامش کردم که این سمت محله چینی ها کمترین دستمزد را میگرفت. گرفت ماشینم را هم فروختم به هر حال من مانده بودم و هفتیلی که تیر نداشت و هیچ پولی برای خرید گلوله نداشتم. هیچ پولی توی حسابم نبود و هیچ چیزی هم نداشتم که گرو بگذارم. در آلونک محقرم در خیابان لبن در سان نشسته بودم و داشتم به این آزا فکر می کردم که یک هو گرستنگی مثل جالویس به جان مئدم افتاد. هو هوک اساسی روانه دل رو دم کرده بود و داشتم خودم را به یخچال می رسندم. خبت بزرگی بود داخل یخچال را نگاه کردم و برافاصل درش را بستم تا انبوه آماسیده ی کپک ها راه فرار پیدا نکنند نمیدانم آدم چطور میتواند مثل من زندگی کند آپارتمانم آنقدر کثیف است که تازگی تمام لامپای 7.5 پنج وات را با بیست وات عوض کردم تا مجبور نباشم اوزارا واضح و آشکار ببینم ولخرجی بود اما باید این کار را میکردم خوشبختانه آپارتمان اصلا پنجره نداشت. لا واقعا توی دردسر افتادم. آپارتمانم آنقدر کم نور بود که مثل سایه از یک آپارتمان به نظر می رسید نمیدانم همه ی ای عمرم این طور زندگی کردم یا نه منظورم این است که حتما مادری بالای سرم بوده کسی که بگوید نظافت کنم مواظب خودم باشم جورا هام را عوض کنم من هم این کارها را می کردم. اما فکر کنم بچگی ها یک جورهایی کند بودم و اصل مطلب را نمیگرم حتما دلیلی داشته. کنار یخچال ایستاده بودم نمیدانستم چه کنم که یک هو فکر بکری به ذهنم رسید. چه چی چیزی از دست می دادم؟ پولی برای خرید گلوله نداشتم و نم هم, هم بود باید چیزی برای خوردن پیدا می کردم پریدم بالای پله ها. رفتم دم در آپارتمان صاحبخانه زنگ در را زدم این آخرین اتفاق دنیا بود که او انتظارش را داشت چون یک ماهی میشد که سعی کرده بودم هر طور شده مثل مارماهی از چنگش فرار کنم. اما همیشه در تور فحش و ناسزا گرفتارم میکرد در را که باز کرد باورش نمیشد من آنجا ایستاده باشم مثل برق گرفته ها نگاه میکرد انگار که دستگیری در برق داشته زبانش عملا بند آمده بود فرصت را غنیمت شمردم توی صورتش داد زدم یافتم من میتونم خونه رو بدم میتونم کل ساختمون رو بخرم چقدر بابتش میخوای بیست هزار تا نقد کشتی من داره میرسه نفت. نفت آنقدر گیج و گنگ شده بود که فقط زد بروم تو تعرف کرد که روی صندلی بنشینم هنوز لام تا کام حرف نزده بود مخش را واقعا تید کرده بودم خودم هم باورم نمیشد رفتم تو همانطور داد میزدم نفت نفت و بعد بنا کردم به ادا در آوردن اییه فوار زدن نفت از زیر زمین را در میآوردم پیش چشمش از خودم یک چاه نفت ساخته بودم. نشستم، او هم مقابل من نشست فکش هنوز همانطور قفل بود توی صورتش داد زدم عموم تو رودایلن نفت پیدا کرده نصفش مال منه من پول دار شدم بیست هزار تا نقد برای این تاپالهی ای که اسمشو گذاشتی مجتمع مسکونی میدم بیست و پنج هزار تا دوباره داد زدم ازت میخوام که با من ازدواج کنی و با هم یک عالم از این مشتمه های مسکونی قد و نیم بسازیم میخوام بدم اغناممونو رو تابلوی جای خالی نداریم چاپ کنن کلکم گرفت حرفامو باور کرد پنج دقیقه بعد یک فنجان قهوه ی رقیق رقیق تو دستم بود و یک دونات مانده را سق میزدم او هم میگفت که چقدر برای من خوشحال است گفتم مجتمع را هفته آینده اولین آیدات چند میلیون دلاری از بابت حق امتیاز نفت که دستم رسید از او میخرم از آپارتمانش که بیرون میرفتم، رفتم را فرو نشانده بودم و خیارم از بابت یک هفته اقامت دیگر جمع شده بود وقت رفتنم دست داد و گفت چه پسر خوبی نفتو رو دایلند گفتم درسته نزدیک هارتفورد. میخواستم 5 پنج دلاری به تیغمش تا بتوانم چند تا تیر هم برای هفتیرم بخرم اما فکر کردم تو همینجا که پیش رفتم کافی است <تصفح> شوخی را داشتید؟ اوه اوه او داشتم از بلا پایی می بروم آپارتمان خودم که بنا کردم به رویای بابل را دیدن خیلی مهم بود که حالا که اوزاداش رو به راه می رویای بابل را نبینم اگر دوباره مشغول بابل میشدم، شدم ساعتها بدون آنکه بفهمم اسیرم می کرد. ممکن بود در آپارتمانم نشسته باشم و ناگهان ببینم نصف شب رسیده و من پاکیادم رفته حواسم به خودم باشد و مهار زندگیم را به دستم بگیرم زندگیی که نیاز فوریش چندتا تیر برای هفتیرم بود در این موقعیت آخرین چیز دنیا را که لازم داشتم در رؤیای بابل فرو رفتن بود یک چند وقتی باید جلوی بابل را می‌گرفتم. آنقدر که به در این فاصله فکری برای پیدا کردن تیر بکنم از پلکان مشتمع مسکونی بوی ناگرفته در با داغان و مقبر مانند که پایین می آمدم، تلاش متحورانهی به خرج دادم تا فاصله خودم را با بابل حفظ کنم. چند رسی سردرگم بودم و بعد بابل دوباره به درون سایه ها خزید و از من دور شد. به فهمی نفهمی غمگین شدم. خوش نداشتم بابل برد. به آپارتمانم رفتم و اسلحه را برداشتم همانطور که داشتم توی جیبم میگذاشتم با خودم فکر کردم بالاخره یک روز باید تر و تمیزش میکردم به علاوه احتمالا باید یک اسلحه بند ای هم فراهم میکردم یک جسته حسابی میشد و چه بسا کمکم میکرد سفارش های دیگری هم بگیرم از آپارتمانم که بیرون میآمدم تا روانه سان فرانسیسکو شدم بروم چندتا تا تیر دستو پا کنم زن صاحب صاحبخانه بالای پله ها منتظرم ایستاده بود خدای من فکر کردم حتما حواسش سر جا آمده منتظر بودم سیل فحش و ناسزا را سمت گوشم روانه کند تا زندگی روی زمین دوباره جهنم شود اما اینطور نشد او همانطور آنجا ایستاده بود و داشت تماشا می‌کرد و من هم با لبخند یخزده‌ای روی صورتم داشتم از خانه بیرون میزدم. در ورودی را که باز کردم لب باز کرد با صدای تقریباً ای گفت چرا چاه نفت تو اکلاهاما نیست؟ تو اکلاهاما هم که یه آلم نفت است. گفتم، خب، زیادی به تگزاس نزدیکه، آب شور زیر وزگراها رو هم گرفته. همین دو جمله ترتیبش را داد. دیگر صداش در نیامد. گیافش مثل آلیس در سرزمین عجایب شده بود.